بخش بیست کم. فرد صبح هسن با هم تماس گرفت الو عباس چطوری؟ گوشی از طرف هسن کمی خشخش میکرم الو سلام هسن چه خبر؟ خبرهای بد، یعن خورد به همه چی؟ چی شده؟ لاده طوری شده؟ از خربازی در نیار عباس، گوشت با منه؟ خواهش میکنم از خربازی در نیار باشه باشه، صدا داره بعد میاد چرا صدا دروبت میاد؟ دارم از تلفن عمومی زنگ میزنم، ادرسم از تکلو خبری نشد؟ نگفتم میخوان چیکارم کارم کنن؟ نه عباس، قضیه چیز مهمتریه خریدت انجام نشده صدو بزرگت تو ول بده نمیشنم داری چی میگی خیلی هم خوب میشنیدم ولی از اینور داد میزدم هم که طبیعی تر به نظر برسد خریدت میگم خریدت انجام نشده مثل که سایت بالا نیمده از کجا بالا نیمده؟ میگم مشکل سایت حل نشده عباس. چی کار باید بکنیم؟ خود ناکسش از من هم بهتر میدانست که چی کار باید بکنیم. ففه میکرد که بگوید فرحزاد. زنگ زده بود من را تلکه کند. گفتم حالا چی میشه اصلا صداد نمیاد؟ چی گفتی الان؟ میگم صداد خیلی خفه میاد. گوش رو قط کرد و بلا من را گرفت. الو عباس صدا میاد؟ نه بگو الان بهتره نه نه دقیقا بگو ببینم چی شده؟ از آن بر گوشی داشت خودش را جر میدار خبر نداشت از این بر صدایش را قشنگ دارم عباس عباس دیشب محصولات از تخفیف در اومدن محصولات گرون شدن آره آره میدونم قبلا گفته بودی که اینجوری میشه حالا چقدری رفته روش؟ آره گفته بودم اون محصولی که تو انتخاب کردی صد و هفتاد اشتر روش شده تک تومن؟ نه صد و هفتاد ازار تومن عیبی نداره برای یک دست نفس راحتی کشید ادامه دادم جهنم و زرر به جاش رو پاب رو بخر میتونه بخری؟ فرقی نمیکنه کنه عباس، فرقی نمیکنه. جفتش با هم از تخفیف در اومده یعنی نمیشه اینو با اون تاخ زد؟ نه نه نمیشه. صدا داری؟ نمیشه. خب پس فعلا کاری نداری؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ بیخیالش که نشدی. میتونی جورش کنی؟ آره؟ میتونی؟ حتی فکر جور کردن 170 80 چوقه دیگر بیشتر از اینکه غیر ممکن باشد شادی آور بود. مزده هزار که هیچ این سری اگر زیر هجده چرخم میخوابیدم افاقه نمیکرد. به هارت پورتم نگاه نکنید. من این ورانور برای این کارها یک شاهی اعتبار ندارم. گفتم آخه بابات خوب، نه, نه خوب، من از کجا دوباره این همه پور جور کنم اصلا؟ چه میدونم از همونجا که یه سری جور کردی؟ چایدی تو بگو دوزار. یعنی جا زدی؟ الو؟ الو؟ حسن میگم جا زدی مخصوصا دوبار پرسید که خیالش از هر لحاظ راحت باشد الو حسن الو پول ندارم صدای من میاد با اینکه حرف حساب توی مشتش گذاشته بودم نمیدانید آن طرف خط چه کلی بازی از خودش درآورد جیغ میزد به اسمم قسم جیغ میزد اگر میدیدید میگفتید تیر خورده. حتی لحظه امان نمیداد که من هم بتوانم دوتا فحش بدهم. آن روی سگم را رو بالا آورده بود هرچه توی دهنش میامد بارم می مجبور شدم گوشی رو قطع کنم بلافاصله تلفن کرد. من احمق دوباره گوشی رو برداشتم که دوباره گذاشت به آپاچی گیری. حرف حسابی هم که نمی زد. فقط دریوری می گفتفت. ته تهش هم یک فحش خیلی بیادبی داد و خودش دو گوشی رو قطع کرد. گو اینکه فوش با ادبی که اصلا وجود ندارد. در واقع منظورم حرفایی است که پای بستگان نزدیک انسانیت را رسد میکشد. باز خودش را رحم کرد که این بگمگاو پشت تلفن شد و وگرنه که این حسن کل خر میزه شهلا و شهیدم میکرد. شاید به ظاهرم نیاید اما وضعیت جنم جوری است که اگر دعوا پیش بیاید مفصل کتک میخورم. نه که زورم کم باشد اما هر وقت دعوا میبینم زانوهایم به طرز آسایی سست میشوند. اصابم حسابی به هم ریخته بود. رفتم توی اتاق بالا و شروع کردم و قدم زدم. قدم زدم برای آدم عصبانی از هر چیز دیگری که فکرش رو بکنید بهتر است. چون اتاق بالا خیلی کوچک است به صورت اولیب راه میرفتم از لحاظ تجربی اینجوری طول اتاق بیشتر می شود. ولی اگر کسی مایل باشد از نظر ریاضی هم حساب کند به احتمال 90 درصد به همین نتیجه می رسد. دو سه ساعت با خودم درگیر بودم اصلا دیگر بهم زنگ نزد ولی مثل روز برام روشن بود که اینها به این سادگی دست بردار من نیستند دیر یا زود بالاخره به من حمله می تا زور که آب از آب نجام بید ساعت حدود سه سونین سه بود که شاباجی از طبقه وسط صدام زد عباس! آی عباس! ننه تلفون! جلوتر از این بهتان می گفتم که ما توی خانه همش یک دستگاه تلفن داریم که توی همین طبقه وسط جاسازی شده است بعد از آخرین دعوایی که بر سر قبض تلفن بپاشد، پا شد آقا جون ترجیح داد که تلفن جلوی چشم خودش باشد میگوید مالت را سفت بگیر همسایت را دزد نکن. این کارش از جهت دو دو تا چهار تا نقض ندارد ولی آدم نباید این جور ذربوار مسائل را توی محیط خانوادگی به کار ببرد له رو چهارتایکی کردم و گوشی رو برداشتم باورتان نمی شودود کی بود؟ انتظار هر دیار البشری را داشتم غیر از لاله. تا گفت سلام چطوری افتادم به تتبطته؟ وقتی دختری با اون مشخصات از آنور گوشی صدایش را برای آدم نازک می کند، از این طرف هم شاباجیت نیمت آن طرفتر خودش را در حال گردگیری نشان میدهد تتبطه واکنشی غیر ارادی است یعنی هیچ جور نمی شود را گرفت. خودم رو جمع وجور کردم و گفتم سلام. لاله گفت خوبی بله این قدر شلو بودم که شکش برد شناختی منو شکیبم لاله شکیب اینجور جور معرفی کردن های دو قسمتی تخم است که جیمز بان توی دهن ملت کاشته است گفتم بله بله حالتون چطوره خوبم تو چطوری غرغرو شستم خبردار شد که با لوس بازی ها میخواهد تسمه تلکم کند. خوبم نه بابا. بله. چه می گفتم؟ شباجی قرار دستم بود. لاله گفت: "حسن یه حرفای میزد. قضیه چیه؟" نالوتی. همین هشت و پشتکم رو کف دستش گذاشته بود. آها نه بابا ایشون که اینجوری خدمتتون اسائه ادب کردن خودشون در جریارن که همین مقدارش هم با چه مصیبتی گردآوری شده مانده بود توی خماری ادامه دادم نه اینکه مشکل بزرگی باشه ها نه ولی الان وضعیت نقدینگی حالت اسفباری داره متوجه هستید؟ دارم از جیب استفاده میکنم از مایه لفظ قلم صحبت کردن مدل های خیلی زیادی دارد ولی این مدل حرف زدن من توی هیچ کدامش هر وقت میخواهم حرفای جدی بزنم توی حرفای یومیهی خودم هم تر می خورد. لاله گفت داری از چه حرف می زنی؟ مسئله پوله؟ دختر به فهمی بود. ازش خوشم آمد. بله بله، عوضا جوری نیست که بتونم بیشتر از این در خدمتون باشم. حرفا مفهومه؟ هم من همه این کاری رو از چشم شاباجی می بینم. نباید بیشتر از آن توی اتاق می مان. آره عباس جام میفهمم. خیلی از بچه ها مثل خودت بودن با سختی پول اولیشون را جور کردن همین هستم اگه کمی در اون در زد که پولش تهیه کرد تو مه فکر کنی که این یه سرمایه گذاریه نه یه خرید اگر کسی با یک آدم یک قبا دارد درباره پول جور کردن کلنجار می روید به جای بحثای ریشهی اقتصادی بهتر است فوتوفن دزدی کردن را به طرف یاد بدهد گفتم میدونم خانم شکیب ولی در شرایط موجود همه زورم همین بود که خدمتون زدم دوست داشتم به جای شکیب شکبش لاله جان بگویم یا حداقل لاله خانم ولی بابت همینش هم تا شب باید به هفت نفر جواب پس میدادم. هنوز مانده که شبای هم را بشناسید لاله گفت یعنی وسطیش راهی نداره نه اصلا حرفشم نزنید من تو همین مقدارش هم همه اعتبارمو هم گذاشتم وسط متوجه میشین همه اعتبارمو منظورت پول قرض کردنه؟ آره آره، حتی نصف لباسا ما هم در این راه از دست دادم. باور کنید. دیگه ندارم ایشون. سر سوزنی نفهمید که دارم در مورد چی حرف میزنم. اما از لحن صحبتم دستش آمد که پدرم دارد قشنگ درمیآید. روی همین از خیلی طبیعی از رفت بیرون به خدا دخترای امروزی نصف این پیرزن شعوری چیزی ندارن. لاله گفت: لباسات لباسات از دست را دید چرا؟ بدش کن اون خیلی مهم نیست. منظورم اینه که نمیشه وگرنه بنده مرض نداشتم که بخت شما رو بگیرم. لاله حدودا فهمید که چه مرگم است. کمی مکس کرد و با صدایی که انگار دارد با خودش صحبت میکند گفت: آره دیگه اگه دیشب خریدت انجام شده بود که دیگه این مشکلا نبود. چون با این حرف خودش با دست خودش به مرغداد داده بود من هم یابو برم داشت آره آره تازه اون اون هم, هم اتاقو به هم ریختن و به هم تبریک گفتن میخوام بگم اگه هنوز کلک کارا نکنده بودن واسه چین همه شلوغش کردن خودت اونجا بودی دیدی که لاله لاله اما بهتر بود که شباچی توی اتاق میماند چون این بار مکس لاله زیاد طول کشید خودم ادامه دادم تو میگی چیکار کنم حالا هیچ جوری نمیتونی جورش کنی؟ قرصی؟ قولهی؟ قوله از آن کلمه ها نیست که به جدا استفاده شود. یعنی قرض و گوله را باید با هم کرد. گفتم من میگم نره تو میگی بدوش. به دین به آیین ندارم از کی برم بگیرم؟ مخصوصا داشتم کاری بازی در می آوردم. دخترها عاشق مردهای یک دندهی لجبازند. اما باز نبود. دوستی آشنایی آدم به در کسی چه می دونم؟ مثلا خودت عالی شد پسر بهترین حرفی بود که توی شش ماه گذشته به کسی زده بودم گفت خودت؟ یعنی چی خودت؟ تو آدم انسانیت و محبت چی داری میگی؟ از اولین در پست میدم باور کن جا خورد یک مرتبه بر جهید و صاف نشست دستش را به طرف جناق سینهش برد و با چشمهای پلوک گفت من؟ تلفن حالتی دارد که از این ور آن ورش دیده نمی شود ولی به دلایلی حتم دارم عین همین کارهایی را که گفتم انجام داده است دخترها همیشه وقتی تعجب می‌کنند از این دست کارها انجام می دهند گفتم آره خب چه ایرادی داره هم آشنایی هم دوستی هم به در بخور میفهمی که دارم چی میگم شاید دستش را رو از روی جناق سینه‌اش برداشته باشد ولی چشمهاش هنوز گرد گرد بود یعنی چی؟ یعنی چیکار کنم من اگر مرد نمی شدم قطعا انتخاب اولم زن شدم بود این جماعت وقتی تصمیم می چیزی را نفهمند می توانند در موردش ساعتها نفهمند به خاطر همین اخلاقهاشان هم هست که می خواهم وقتش که رسید یک زن برای خودم بگیرم گفتم منظورم اینه که کسری پولم جبران کن پول دار که شدم اصل و فرش را با هم پسید می دم این حرفی که به حسام زده بودم لاله کمی منمن کرد و گفت خیلی خوب فعلا ت گوشی رو گذاشت. فکر می کردم که به داده بودم، بیشتر از اینها جایی بحث و تبادل نظر داشته باشد. ولی دست کم لاله که مثل من فکر نمی کرد. روی هم رفته بهتر از آن چیزی شد که پیشبینی را کرده بودم. چون خود لاله به من گفت که تقصیر زیادی ندارم. حالا حتی کمی تربکار هم به نظر می آمدم. همانجا روبروی تلویزیون دراز کشیدم. هیچ دلیل به خصوصی هم نداشت. اشقم کشی تلویزیون تماشا کنم. قله مرغی هر که ندارد ولی خیلی خوب آنتن میدهد. هم موبایل هم همه چی. من مرده‌ی آنتن قله مرغی‌ام. غیر از شبکه دو همه را آینه آینه میگیرد. حالا اگر جایی درز نمی کند یک چیز پنهانی هم بهتان بگویم. داییم یک سیم قرضی از ماهواره کریم آقا همسایه دیوار به دیوارمان به تلویزیون وصل کرده. خیلی چیز جالبی است پسر. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد نشان آدم می دهند یک وقت های چیزهایی پخش میکنن که نگو رقص و آواز و اخبار نامید کنند و همه چی. فقط از بعد روزگار هر چیزی که کریم آقا و اهد و عیالش آن طرف نگاه میکنن ما هم باید این بر ببینیم. یادم هست یک دفعه وسط یک فیلم مزخرف کانال را عوض کردن. چنان حواری از این ور کشیدیم که بیچاره از هولش فوری کانال را سر جاش ایدهی که دارم این است که اگر فیلمی تا وسطش دیده شد باید تا آخرش رفت. حالا هر چقدر هم که آتاشغال باشد. تلویزیون خودمان که هیچ وقت خدا هیچی ندارد. زدم روی ماهباره که دارم کمی باز بشود، دیدم دخترای کریم طبق معمول دارن موزیک تماشا می‌کنند. آن هم چه از این شبکه های ایرانی که توش جوانک‌های و جمع می‌شوند و اطروار می‌ریزند. منظورم رو متوجه می‌شوید؟ از همینها که توی شهرهاشان یک ریز به دخترها بدو بیراه میگویند. یک پسر رو داشت میخوان که قبلا ندیده بودمش به گمانم تازه کار بود بی غیرت خودش رو مثل دو جنسا درست کرده بود شریکه میخوان این بود عشق تو ویلو کرد زد درب و داغو کرد بدون چشت محاله این شده بیچاره حالا وای, وای وای وای وای وای وای با پر روی تمام همین دو بیت را 120 بار تمام تکرار کرد آدم ترجیح می دهد به جای صدای انکرال اصفات این سوسولها موسیقی محلی قشقایی گوش کند. عوضش از شجریان خیلی خوشم میآید. بازیک صدایی دارد دلم برای صداش لک نزده ولی حداقل آدم میفهمد دارد چی چیچی میخواند یک رب بنای محشری هم خانده که جان میدهد برای روزه گرفتن فقط بعدی که دارد من هر دقیقه او را با شرامناذری اشتباه می گیرم. داشتم هرچم که این کانالان کانال کردن فرقی نکرد. اگر مطمئن بودم حسن جی و راه نمیاندازد حاضر بودم بهش سنگ بزنم و موقتاً قضیه را فیصله بدهم ولی خب مطمئن نبودم رفتم بالا مامان و خواهرم از خرید برگشته بودند مامان چیزهایی رو که برای عید خریده بود طبق معمول روی زمین پهن کرده بود هیچ هم توی صورتم نگاه نمی کرد اما شیما داشت موزی موزی وراندازم می کرد دندانهای نیشش را رو روی لوچش گذاشته بود و سرش را به دو طرف تاب می ده. اما که خودم قبلا حدسش را زده بودم شاباجی چغولیام را کرده بود به به پیغمبر به همه کاری کار دارد نخود توی دهنش نمیخیسد آن وقت اسم خدیجه خبرکش بد در رفته است تا وضعیت قرمز نشده دوباره گردش کردم در مغازه باباجون رفته بود ختم و چون دایی فقط آنجا بود تا اینکه دو ساعت میشد روی امنیت آنجا حساب کرد مشتریم که قربانش بروم پاش را از در تو نمیگذاشت. خواستم دایی را به حرف بگیرم که وقت بگذرد ولی قیدش را زدم. یک ذره به این دلیل بود که دایی موقع اختلاط خیلی دیر به دیر از خودش واکنش نشان میدهد. حوصله آدم سر می میرود. هوا که تاریک شد، درم خود به خود بازتر شد. همیشه وقتی دم غروب درم میگیرد، بعد از تاریکی هوا درم باز می شود. این عکس عملی است که اعصاب روانم نسبت به تغییرات شب و روز از خودش نشان میدهد. آقا جون که برگشت به خاطر اینکه دم چکش نباشم دوباره رفتم بالا. شما رو به خدا زندگی من رو میبینید؟ ماما کمی پکر به نظر میآد ولی راستش رو بگویم چیزی به رویم نیاورد شاید میخواست ببیند ماجرای من و این دختره به کجا میکشد بعد آستین بالا بزند هر جور هم که حساب کنید خیلی بیرحمانه بود که فقط به خاطر یک تلفن بخواهند من را زیر زیرخیه بکشند. شب بعد از اینکه همه خوابیدن رفتم سیم تلفن را از پاگرد قطع کردم. علت این کارم هم این بود که طرز فکر آقا جون مثل مامان روشن فکری نیست اگر لاله حوث میکرد شبان صدایم را بشنود آقاجون جون شبان خونم را میریخت در هر صورت اگر این اتفاق میافتاد هر سمان حق داشتیم یادم نیست که آن شب راحت خوابم برد یا نه ولی با اتفاقاتی که آن روزها داشت میافتاد نباید تخت و تبارک که بگم مرگم رو گذاشته باشم